اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صفات صفا به نام خدابند بخشنده بخشایشگر سوگند به فرشتگان صف کشیده فالزاجرات زجرا و به نهی کنندگان فالتالیات ذکرا و تلاوت کنندگان پیابه آیات الهی این لإلهكم که معبود شما یگانه است رب السماوات والأرض وما بینهما و رب پروردگار آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق ها این زینا السما الدنيا بزینه الكواكب ما آسمان نزدیک را با ستارگان آراستیم و حفظا من كل شيطان مارده تا آن را از هر شیطان خبیسی حفظ کنیم لا يسمعون الى و من كل جانب آنها نمیتوانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و هرگاه چنین کنند از هر سو هدف قرار میگیرند لهم آنها به شدت به عقب رانده شوند و برای آنان مجازاتی دائم است مگر آنها که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند که شهاب ساقب آنها را تأخید می کند فاستفتهم اهم اشد خلقا من خلقناه انا من از آنان بپرس آیا آفرینش آنان سخت تر است یا آفرینش فرشتگان ما آنان را از گل چسبنده ای آفریدیم بلعجب عجبت و يسخرون. تو از این کارشان تعجب میکنی ولی آنها مسخره می و اذا ذكروا لا يذكرون. و هنگامی که به آنان تذکر داده شود هرگز متذکر نمیشوند. شود و اذا رأو آیتن و هنگامی که معجزه ای را ببینند دیگران را نیز به استهزا دعوت می کنند و قالوا این ها الا سحر مبین و میگویند این فقط سهری آشکار است ترابا آیا هنگامی که ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد و آیا پدران نخستین ما باز می قل بگو آری همه شما زنده میشوید در حالی که خار و کوچک خواهید بود هم تنها یک سیحه عظیم واقع می شود ناگهان همه از قبرها برمیخیزند و نگاه میکنند وقالو یا ویلنا هذا یوم الدین و میگویند ای وای برما این روز جزاست هذا یوم الفصل الذی کنتم به نی این همان روز جدایی است که شما آن را تکذیب می کردید. در این هنگام به فرشتگان دستور داده می شود. زالمان و هم ردیفانشان و آنچرا می پرستیدند. وما کانو یعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم آری را جز خدا می پرستیدند جمع کنید و به سوی راه دوزخ هدایتشان کنید وقفوهم این هم مسئولون آنها را نگه دارید که باید بازپرسی شوند ما لكم لا شما را چه شده که از همیاری یاری نمیطلبیدول حمولی ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندند وق بعضهم على بعض و در این حال رو به یکدیگر کرده و از هم می پرسند. قالوا این عن گروهی میگویند شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید اما جز فریب چیزی در کارتان نبود بل لم آنها در جواب میگویند شما خودتان اهل ایمان نبودید تقصیر ما چیست؟ و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم ما هیچ گونه سلطه ای بر شما نداشتیم بلکه شما خود قومی تقیانگر بودید فحق علینا قول ربنا اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم شده و همه گی از عذاب او می چشیم ما شما را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه بودیم این هم می اومدیمفی العذبی مشتریونعاری، همهی آنها در آن روز در عذاب الهی مشترکند این كذلی نفعل نفعلوب مجرمین ما این گونه با مجرمان رفتار میکنیم. إنهم كانوا إذا قیل لهم لا إله إلا الله یستكبرون چرا كه وقتی به آنها گفته میشد معبودی جز خدا وجود ندارد تكبر و سركشی میکردند ویقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر وجنون و پیوسته میگفتند آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟ بل جاء بالحق چون این نیست او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. اینکم لذائق العذاب العليم. اما شما مستکبران کور دل به طور مسلم عذاب دردناک الهی را خواهید چشید و ما توجزون الا ما کنتم تعملون و جز به آنچه انجام میدادید کی نمی نمیشوید الا عباد الله المخلصین جز بندگان مخلص خدا اولئک لهم رزق معلوم برای آنان روزی معین و ویژه است. فواكه وهم مكرمون میوه های گوناگون پرارزش و آنها گرامی داشته می‌شوند. فی جنات نعیم در های پر پرنعمت بهشت. علی سرر متقابلین در حالی که بر تخت ها روبروی یکدیگر تکیه زده اند وطاف عليهم من معین. و گردا گردشان لبریز از شراب تهور را میگردانند. گردانند بیضاء لذت شرابی سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان لا فی ها غولون ولا هم عنها ينزفون شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می شبند و, و نزد آنها همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی مکنون. گویی از لطافت و سفیدی همچون تخم مرغ هایی هستند که در زیر بال و پر مرق پنهان مانده و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است فَأَقْبَلَ بعضهم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ در حالی که آنها غرق گفتگو هستند بعضی رو به بعضی دیگر کرده می‌پرسند قال قائل منهم إن لي كان یکی از آنها میگوید من همنشینی داشتم لمن که پیوسته می آیا راستی تو این سخن را باور کرده ای؟ ترابا که وقتی ما مردیم و به خاک و استخان مبدل شدیم بار دیگر زنده می و جزا داده خواهیم شد قال هل انتم سپس میگوید آیا شما میتوانید از او خبری بگیرید فاطلع فرآاه فی سواء الجحیم ینجاست که نگاهی میکند ناگهان او را در میان دو دوزخ میبیند قال الله میگوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به حلاکت بکشانی من و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احزار شدگان در دوزخ بودم افما نحن سپس به یاران خود میگوید: گوید: ای دوستان، آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودانه خواهیم بود؟ الا موتتنا نالؤل، ایلا موتت و ما نحن بمعذبين. و جز همان مرگ اول. مرگی به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد این هذا الفوز العظیم راستی این همان پیروزی بزرگ است هذا لمثل هَذَا فَلْيَعْمَلِ آره برای مثل این باید عمل کنندگان عمل کنند بذلك خير نزلا ام شجره الزقوم آیا این بهتر است یا درخت زقوم إن جعلناها فتنة للظالمين ما آن را مایه‌ی درد و رنج ظالمان قرار دادیم انها شجره تخرج فی اصل جهنم آن درختی است که از قعر جهنم میروید طلعها کانذو طلعها كانه آن مانند سرهای شیاطین است فإنهم لآكلون منها. إنهم لا آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها، فإنهم فإنهم لاكلون منها، فإنهم لآكلون منها منها فَإِنَّهُمْ لَآکِلُونَ مِنْهَا فَبَالِعُونَ مِنْهَا البطون. آنها مجرمان از آن میخورند و شکمها را از آن پر می کنند. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا الامين ثم بين إن... لهم عليه من امين روی آن آب داغ متعفنی می نوشند ثم سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند فهم با این حال به سرعت به دنبال آنان کشانده میشوند. شوند و قبل از آنها بیشتر پیشین نیز گمراه شدند ولقد ارسلنا فی هم ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم فانظر كيف كان عاقبت المنذرین ولی بنگر عاقبت انذار شوندگان چگونه بود؟ الا عباد الله المخلصین مگر بندگان مخلص خدا و لقد نوح عمل نوح ما را خواند و ما دعای او را اجابت کردیم و چه خوب اجابت کننده ای هستیم و نجیناه و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم و جعلنا ذریته هم الباقین و فرزندانش را همان بازماندگان روی زمین قرار دادیم و ترکنا عليه في و نام نیک او را در میان عمتهای بعد باقی نهادیم سلام, نوح سلام بر نوح در میان جهانیان باد ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم من چرا که او از بندگان با ایمان ما بود ثم سپس دیگران را غرق کردیم و, این من و از پیروان او ابراهیم بود از جاء ربه بقلب سلیم به خاطر بیاورد هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد از قال لعبیه و ماذا تعبدون هنگامی که به پدر و قومش گفت اینها چیست که می پرستید ایفکن دون الله توریدون آیا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین میروید روید فما ظنکن بی العالمین فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فما ظنكم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ شما درباره پروردگار آلمیان چه گمان می فنظر فی النجوم سپس نگاهی به ستارگان افکند فقال اینی سقیم و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی آیم فتولو عنه مدبرین آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند فراغ اله آلیتیم فقال علا تأقلون او وارد بدخانه شد مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخور گفت چرا از این غذاها نمی مالكم لا تنطقون. اصلا چرا سخن نمیگویید فراغ علیهم بالیمین سپس به سوی آنها رفت و ضربه این محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد و جثه بزرگ همه را در هم شکسته اقبلوا اليه يزفون آنها با سرعت به او روی آوردند قال اتعهدون ما تلحتون گفت آیا چیزی را میپرستید که با دست خود میتراشید والله خلقكم وما تعملون با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بت که می سازید قالو بنو له بنیانا بت پرستان گفتند بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنمی از آتش بپم کرد. به کیدا آنها ترهی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند ولی ما آنان را پست و مقلوب ساختیم. وقال اني ذاهب الى ربی سیهدین. او از این محلک به سلامت بیرون آمد و گفت من به سوی پروردگارم میروم او مرا هدایت خواهد کرد رب ربی من پروردگارا به من از صالحان فرزندان صالح ببخش. فبشرناه بغلام حليم ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم فلما بلغ معه السعيا لَمَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرُ فَانْظُرُ مَا قَالَ يَا أَبَدِ فَاعِلِ الْمَاتُومَ قال يا ابتي فعل ما تؤمر ستجدني ان الله من الصابرين هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت پسرم من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم نظر تو چیست گفت پدرم هرچه دستور داری اجرا کن به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت فلما اسلم و للجبین هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را برخاک نهاد و نادیناه ابراهیم او را ندا دادیم که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین آن رؤیا را تحقق بخشیدی و به معموریت خود عمل کردی ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم این هذا لهو البلاء المبین این مسلما همان امتحان آشکار است و ما زبه عظیمی را فدای او کردیم و نام نیک او را در های بعد باقی نهادیم سلام, علی ابراهیم. سلام بر ابراهیم كذالك نجزى المحسنين این كل نيكو را پاداش میدهیم انه من عبادنا المؤمنين او از بندگان با ایمان ماست وبشرناه با اسحاق نبیا من الصالحين ما او را به اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم و بارکتنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی بودند نیکوکار و افرادی آشکارا به خود ستم کردند. و لقد على موسى و هارون ما به و هارون نعمت بخشیدیم و نجیناهما و قومهما الكرب العظیم و, و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم و نصرناهم فکانوهم الغالبین و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند ما به آن دو کتاب روشنگر دادیم و, و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم و, ترکنا فی و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاشتیم سلامٌ علی موسی سلام بر موسی و هارون ان كذلك نجزی المحسنین. ما این گونه نیکو کاران را پاداش میدهیم. انهما من عبادنا المؤمنین آن دو از بندگان مؤمن ما بودند و این لمن و ایلیاس از رسولان ما بود اذ قال لقومه الا تتقون به خاطر بیابر هنگامی را که به قومش گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ اتدعون بعلا و وتذرون احسن الخالقين آیا بوت بعل را میخونید و بهترین آفریدگارها را رها میسازید الله ربكم و رب خدایی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست فکذبوه فانهم لمحضرون اما آنها او را تکذیب کردند ولی به یقین همگی در دادگاه عدل الهی احزار می شوند عباد الله المخلصین مگر بندگان مخلص خدا و ترکنا ما نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم سلام علی سلام بر الیاسین این کذلیکنجزل محسیینین ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. من همنایبدین المؤمنین او از بندگان مؤمن ماست و, این و لوت از رسولان ما است اذ به خاطر بیاور زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم مگر پیرزنی که از بازماندگان بود و به سرنوشت آنان گرفتار شد. سپس بقیه را نابود کردیم و, عليهم و شما پیوسته صبحگاهان از کنار ویرانه های شهر های آنها می گذرید. و افلا تعقلون و همچنین شبانگاه آیا نمی اندیشید؟ و این یونس من المرسلین و یونس از رسولان ماست اذ ابقا این الفلک المشحون به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد فساهم فکان من المدحدین و با آنها قرع افکند و به نام او افتاد و مقلوب شد. فلتقمه الحوت وهو ملیم. او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که مستحق سرزنش بود. فلولا انه كان من المسبحين و اگر او از تصبیح کنندگان نبود للبث في بطنه الى يوم تا روز قیامت در شکم ماهی میماند وهو به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار بود و, شجرة من و بوته کدوعی بر او رویاندیم تا در سایه برگهای پهن و مرتوبش آرامش یابد و ارسلناه او و او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری یا بیشتر فرستادیم آنها ایمان آوردند از این رو تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بحرمند ساختیم ولهم از آنان بپرس آیا پروردگارت دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست؟ ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند الئنهم من افکهم یقولون بدانید آنها با این تخمت بزرگشان میگویند مولد الله و انهم لکاذبون خداوند فرزند آورده ولی آنها به یقین دروغ می گویند البنات آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟ ما تحكمون؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم می کنید؟ افلا آیا متذکر نمی شوید؟ ام لكم سلطان مبین؟ یا شما دلیل روشنی در این بار دارید فأتو بکتابكم این کنتم صادقین کتابتان را بیا اگر راست میگویید گوید و جعلو بینه و بین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون آنها مشرکان میان او خداوند و جن خیشابندی و نسبتی قائل شدند. در حالی که جنیان به خوبی میدانند که این بود پرستان در دادگاه الهی اهزار می شوند. سبحان الله عما یصفون است خداوند از آنچه توصیف می کنند. إلا عباد الله مگر بندگان مخلص خدا. وما تعبدون شما و آنچه را پرستش میکن؟ تو هرگز نمی توانید کسی را با آن فرید دهید إلا من هو صال مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می شوند وما ما مننا الا له مقام معلوم و هیچ یک از ما نیست جز آن که مقام معلومی دارد و انا لنحن صافون و ما همگی برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاد این و انا لنحن المسبحون و ما همه تسبیح گوی او هستیم و آنها پیوسته می گفتند لو من اگر یکی از کتاب های پیشینیان نزد ما بود عباد الله به یقین ما بندگان مخلص خدا بودیم اما هنگامی که این کتاب بزرگ آسمانی بر آنها نازل شد به آن کافر شدند ولی به زودی نتیجه کار خود را خواهند دامیست و وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده این لهم, لهم المنصورون که آنان یاری شده گانند و این جندنا لهم الغالبون و ما پیروزند فتول عنهم حين از آنها کافران روی بگردان تا زمان معینی که فرمان جهاد فرارسد و وضع آنها را بینگرد چه بی است اما به زودی نتیجه اعمال خود را می بینند يستعجلون آیا آنها برای عذاب ما شتاب می کنند فا اذا نزل بساحتیم فساء اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه فرود آید، امزارار شدگان صبحگاه بدی خواهند داشت و دو از آنان روی بگردان تا زمان معینی و أبصر فسوف و وضع کارشان را ببین آنها نیز به زودی نتیجه اعمال خود را می‌بینند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون منزه هست پروردگار تو پروردگار عزت از آن چه آنان توصیف می کنند و سلام علی المرسلین و سلام بر رسولان و الحمد لله رب العالمین و حمد و ستایش مخصوص خداوندیست که پروردگار جهانیان است